أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله الطيبين الطاهرين دائمه دائمه اللهم سهل حاجه بردر دست ها متخیر ما مصمت شیخ و استاد از کتاب مجلسی نمه کردن ایشون همه از کتاب تفسیر نیشابوری و تفسیر فخر رازی سهارا نیشابودی هم از فخر گرفته هشت قسم کردن از کم در عباراتی که مقومدی ادهی از عالم های احرستان این ها دیگری ای کردن غیر از این هشت قسم نه غیر یعنی بعضش مخالف بعضش هم توسعه دادن در اون تفسیری که در اون تقسیمی که بود اولیش سهر کلدانیین اهل بابل بود از شد خدمت آیین که و کلدانیین حالا به انهای مختلف در این کتاب فخرازی به اونها آرائی نسبت داده شده یا منکر خدا هستن یا منکر سفا سیلاوی یا منکر از هستند. هستن در توضیحات مقصلی در کتاب فخرازی همون در تفسیر نیشا خیلی تفصیلات نمازیم اما در کتاب فخرازی چند سفحه راجع به آراء حقائدی و به حال موزه که این کلدانی این پرداخت. عرض شد که این که این مطلبی که ایشون گفته که این ها سهری داشتن و مونکر خدا بودن این با توجه به بردر شواهد تفسیری هم دور میان که در اون آیه موارکه به عرض صرف المدانه هاشری تحره را جمع بکنه ظاهر در تفسیر آمده که به بابل همین کلدان به بابل هم فرستاده بودن و از این که اینها در مقابل از اون قرار گرفتن معلوم میشه که اینا واقعا کافر بودن و دیندار نبودند و این مطلبی رو که تحرازی گفته احتمالا مطلب درستی باشه تا اینجای کار عیبی ندار ما به این مناسبت و باید توضیح روی که نکنه کلمه بابل که در قرآن به کار برده شده این اشاره به اون صحر باشه و ما اون زل علال ملکن به بابل و هاروت همان به این مناسبت متعرض آیه شدیم بله بحث ما راجع به این آیه نبود به این مناسبت که کلمه بابل به کار برده شده و تصور شده که اینها صحر می که آیا در این آیه مبارکه به سه بابل و صحری که در اونجا بوده ذکر شده به این مناسبت مخصوصا در کتب تفسیر در دلی این آیه این دو ملک چی بودند و چه کار شد و بعد اوضاعشون چی شد و آمدن به کلی زمین و بعد چی کار کردند و زهره باز نم آدم شد زمین شد خیلی قضایی های عجیب و قضایی رو نقل کردن ما به مناسبتی ارز بعد که یک سطلاحا آشنایی با آیه مارکه باشه و نتیجه نهایی این شد یعنی اجمالا امروز باز تفصیل بیشتر این که این آیه مربوط به شهر بابل نیست حالا آیه اثر فلمدائن حاشیه با درجه تنفسیری میخوره اما این آیه ناظر نیست هر شو در آیه 301 خدا میخوان آمد که جاهم که زنیرهم به یهود مدینه برمی‌گردد رسول من اندلله که مبارک خود صلی الله علی برای پیغمبر اسلام سلات الله سلامون و علیه مصدق و نمامه هم که تصدیق میکنه هم چه با اوناست که قرآن مراد باشه نبده فریق و منالدین اوتر کتاب حالا این اوتر کتاب ممکن است مراد اهل کتاب باشه یعنی آتاهم الله کتاب یهودی بودن برها گروهی از یهود ممکن است اوتر کتاب همون که من دیروز احتمال بودم اینها ها داشتن این نوشتار مثل اورادی بوده مثل تلسماتی بوده این نوشته اینا رو بینا گفتن اون طور کتاب یعنی نوشته های گونه ها رسیده بوده اینا محتمال هست اون اولیش هم محتمال هست نبده کتاب الله و راه ظهوره من چند تا از مفصلین قبلی مثل تابه گفتن مورد از کتاب الله توبراته یعنی با این اینا یهود بودن احضر کتاب بودن در این قسمت به توبرات مراجع احتمال این که مراد قرآن باشه هست اما انصافه با مجموع شواهد به توراست بهتر می که نه هم لا يعلمون. یعنی به اینها بگید شما توراست دارید چرا به توراست مراجعه نمی کنید. به اون نوشه ها مراجعه نمی این دلیل روشنی برای این کار ندارد وقت نبد فریقون من الذین او تل کتاب بعد از این که رو قبول نکردن نبد توراست به این جد و اینها اتباع کردن پیروی کردن از دو چیز در اینجا در آی مبارکه داره مبدع کار اینها رو میگه این ادهی از یهود عرض کردن یهود در مدینه به عنوان صاحر هم شناختی شده بودن مخصوصا قسمتی از اعمال که بعضها به اصلاح تب بود به عنوان صحر انجام میدن یه بخور میگذاشتن حال فرق خوب میشد بعض از زخم‌های ظاهری هست که آب میاره معروفی که مثلا اون پشکل اولاغ رو دود بخورن دود بخوره خوب میشه این در کب هستی در خود پشکل اولاغ مادر بود حالا این شاید یک مقدار اعمال به اسطلاف به اسم سهرشون در حقیقت تد بوده که توضیحاتش بزرست ساله ولی قرآن مجید در اینجا یک شرحال اجمالی از اینها میده که اینها که از راه تورات رسابارد نشدن و از نوشت های دیگه این نوشته ها به این معنا بوده توی ابرادی اورادی بوده مثلا برای مثلا ازدواج این روخ برای پان اگر این ن بخوان اینطور میشه اینطور بخوا نوشته ها این بوده کتابی که در اختدارشون بوده. این نوشته ها کریم به دو سنس تقسیم کرده که اینا مردمی که دو جور نوشته مجموعاً در اختیار ها بوده یک مارتت و شیاططینعلامیک سleiمان. نوشته هایی بوده که در اونها با عنوان، دعوات، اوزاد، دعوه ها رو نمیدونن ازائم، ازائمی که شیاطین میخوندن اینم که در بعضی از روایات ما آمده روحیه استرغاق نکنه به مالای و عرف شاید یه مدار از استقراها، استرغاها همین بوده مثلا این یهود میبودن که مخواد شکم دردش خوب بشه این عبارت میخونیم این در حقیقت از نوشته های بوده که به شیاطین داده شده ما تکل و شیاطین ملک سلیمان. ده این یک پس اول ماتفل و شیاطین علامون که سلیمان یعنی یک نوشته های شیطانی یک دعاها تلسمات ازائم شیطانی بوده و سر این که به اصداد نسبت دادن چون گفتن که حضرت سلیمان که تمام موجودات رو در اختیار داشت هم جن و هم انس و هم و شیاطین و هم پرندگان و هم پرندگان و همه هم در اختیار ایشان بودن نصفت دادن در بعض دیارات ما هم آمده احرسنت هم آمده شیاطین آمدن نصفت دادن چیزی رو نوشتن و زیر تخت سلیمان گذاشن بعد گفتن حضرت سلیمان به این مقام رسید یا آصف برخیا به اصلاح به عنوان وسیعیشون به این مقام رسیده با این تلسمات با این عدیه با این استرقاها با این رقیه ها این عنوانش بوده عنوان ماتتل و شیاطین یکیش این بوده. دومش چی بوده؟ دومش رما اونزله علال ملکین به باوله حاروز هم حاروز این هم دومش بوده دومش عبارت این بوده که مطالبی وحش شده به دو ملک به دو فرشته حالا ممکنه این اونزله به عنوان الهام باشه اگر ملک مرد صالح باشه فرد صالح یا فرشته باشه در اینجا قرآن شرحی نمیده که حالا اگر این دو ملک بودن چطور توبابه بودن و هر حال اینها وحیانی بودن ما اونزر یعنی از طرف خدا وحش شده بوده به دو فرشته ای که در بابل بودن البته اصل این مطلب که کتب آسمانی به وجود جن به وجود شیاطین به وجود ملائک فرشتگان اعتقاد دارن اینجای بحث نیست یالخیال ناگه مثلا ملک این به بابل این چی در خود قرآن داره که خدا در جنگ برس سه هزار ملائک پنگزار داره سر از که میدونم ملائکر فرستان برای کمک شما در باید ما داره که چهار هزار ملک آمدن برای کمک سید که ایشون شده بودن و روی قبل سید و شهد هستند روز جامت هستن چهار هزار ملک. از ساییز متحدث داره که این چهار هزار ملک تا روز روی قبل سید روی حرم متحدث شهده هستن و سلام به اسطلاح مردم پس این که وجود ملائکه در کتب آسمانی یعنی در کتب مکتب بر این جزء مسلماته اینجا در, در حقیقت قرآن با یک ذرافت لطیفی مبدع علم این یهود مدینه رو که این تلسمات رو انجام میدادن این صحر رو انجام میدادن مبدعش رو قرآن تشریح میکنه یک تطلیل شیاطین بوده دو ماه اون زرن مرکهی بوده یعنی <تصفيق> <ده> به عبارت اخرى اگه بخیم جمع بکنیم یک مقدار شمال وحی بوده رحمانی بوده یک هم شیطانی بوده به قصرمونی تبقیه این تبقیه تعبیر قرآنی و این تعبیر ظاهرن نبیه این معنا که قرآن میخواد تعیید بکنه قرآن میخواد اون کلام اونا رو مرقی بکنه پس اینا مبدعه این سحر و تلسمات و استرقا و این کارهایی که انجام میدادن در مدینه ما چرا آیه رو خوندیم خیال کردیم که این مرگونیشه به بابل یعنی یهودی که در بابل بودن نه ظاهرش اینطور نیست و این جرد احتمال سهر بابل باشه نه ظاهرا یهودی که در مدینه بودن اینها ها با احتمال دو با این دو سنخ یک سرخ شیطانی بود اونا منصوب میکردن میگفتن اینها رو شیاطین در زمان حضرت سلیمان گفتن دو وحیانی بود رحمانی بود میگفتن خدا اینها رو در دو فرشته ای که در بابل بوده فرستاده ما اونزل علال ملکه رو درفت کنیم ما اونزل طبعا انزال اینجا از طرف خلاص به ملک قدسی پی شیطان وحیم میکنیم ما اونزل علال ملکه یعنی اون رحی الهی که بر دو فرشته در بابل پس در حقیقت منشع این کاری که این یهود دو, دو چیز بوده یکی شیطانی یکی رحمانی شیطانیش رو منصوب میکردن به شیاطینی که در خدمت عزیز سلیمان بودن رحمانیش رو هم منصوب میکردن به وحی علاوی که بر دو فرشته بر هاروت و ماروت تو بابل نازل شده دیگه قرآن اینجا توضیح نمیده این ملکه حالتو مارو کی بودن؟ کجا بودن؟ من احتمال میدم از که از کردم خدا من در این فکر نبودن که بیان حاله مناوشه رو این مطلب درست بوده نبوده این چیزی تفکر اونا داشتن تفکرش رو نمی کرد میکنه؟ خوب پس یهود این طور شد نبده طریق و من و اوت کتاب این نبده اولا بعد و تبع و ماسطل و شیافی. این دوتا سوم فیت علمون من هم. این فیت علمون برگرده به اتبر دو تا رو به سیخه ماضی اووردن نبده به اتبر این یکی رو به سیخه مزارق اووردن چرا؟ چون میگه زیبنهای اهمیشون این بود این کار رو انجام میدادن ببینید این کار رو انجام میدادن لذا اونجا با عنوان ماضی بود چون گرفته بودن بعدم دنبال اون گرفته انجام این رسیقه مزاره سر رسیقه مزاره روشن شد که اینا رو همون نوشتاری که در دست داشتن فیعت علمون من همان مایو فرقون بیهی بین المرع و زوجه این خیلی به نظر ما معنای روشند و خیلی واضع پس خدا منده متعاد و اینها وقتی که کتاب قرآن رو دیدن جمع قرآن این بحث ها ندارد این بحث تلسبات و و, و این هر نداره. قرآن بعد میتراند که تورات هم نذاشته این رضعی از احل یهود که این کارا رو میکردن در حقیقت منشأ علمشون این دوتا بوده یکی شیطانی بوده نه مطلق شیطان شیاطی دیگه با سلیمان یکی هم رحمانی بوده ادعا میکردن که خداوند بعضی از این حبیب مثل صدراون میسر گفت که مثلا خداوند انزله علی ملکه که در وقت قرآن حاجت اینو بالای بالا قرآن کار این کار مثلا اگر بخیر آهن نرم بشه این از حوا که در میتاو بوده. پس یک مقدار شیطانی بوده، شیاطین از سلیمان. یک مقدارش هم رحمانی بوده، ادعا می‌کردند که خداوند دو فرشته یا دو مرد صالح حالا اون چون اختلاط شده یا دو پادشاه چون ملکه هم روایت شده یودو ف... یا فرشته خو یا فرشته اله بگیدین دوستا یا فازیشا یا شاه خداوند متعال وحی به اینها فرستاده بوده چه مصری دادن این در اختیار این یهود بوده فکر کردین این دوم پس یک مقدار شیطانی یک مقدارش رحمانی خداوند تعیین نه میگه اینها ادعاشون این بوده و تبع اون من الان برداشت میگیرم اجازه بفرمایید الان توضیح می‌ده این روشن شد اینجا فه تعلمون من هما و هم در یه تعلمون هم در قبلش کلا میخونم آیه قبلش هم باز میخونم چون رفت کردیم دو, دو سه سر رفت کردیم ظاهرا مراد از علم ظاهرا در اینجا عبارت از علم به معنای ما نباشه چون خود یهود هم کلمه تعلیم در تعلیم اول این بود تعلیم دارن یاد کلموتی معنای تعلیمه ظاهرا مراد از علم انتقاش صورت نباشه اون صورت ذهنی تنها نیست در این آیه مبارکه سیاق علم رو که بررسی میکنی با شواهدش مراد اون صورت ذهنی که در اعضا و جباره منعکس بشه نسی که میگید علم و ید یا یهدف و عمل و الا ارتهب ظاهرن مراد از این آیه مبارکه اون صورت ذهنیه که میاد توی مثلا فرض شما ممکن است از این حساب جادوغری هستین مثلا فلان چیز این برای مثلا دیرايين شما چند بخونید اما عمل عملش نکنید دقش بکنیم این رو ظاهرا در اینجا مراده از این این نیست ما الان اصطلاحا این رو علم می‌گیم کتابایی هست که توی جزوه باشه همین مرحوم آقای علامه طباطبایی هم چندین تا از برده میجرب کتاب بونی، یونی کتاب درم شمسل معارف کبرا خیلی از این جو چیزا توش داره، شاپ تو تکرارش شاپ شده. خیلی هم غلط املو داره شاپش. اینا عمدن غلط اومده زدن. الان به هر حال جداول مداول خیلی غلط داره غلط توضیحات، حساب شمسل معارف غلط داده. الان که اگر ماکان یک مقبره سمور مرحوم آیه الوانج که اسم بر در زون الله تعالی علی کتاب بونی رو که به حساب مسیحا بوده. این یتعلمون خوب دقت بکنید کلمه یتعلمون در حقیقت این نبوده که شما مثلا بگه این کتاب چلسمان این کتاب شعاتین رو هم خوندن نباشه کلان چیز برای کار شما این الان شما علم این رو بگید این یه در اینجا یعنی خوندن و عمل کردن این وقت تو آیه نگاه می‌کنه، مراد از یه مجرد خوندن نیست خواند و این رو به کار بر ولذا گفت یه تعلمون من من مای و پرگونه بگید این المرهر از این یه تعلمون با علم همراهه بعد خدا من نمو نکته رو بینها اینا که اینا خیال کردن که مثلا با این عدیه شیطانی یا این عدیه رحمانی یا شیطانیش اول که اینا این کار رو انجام میدن خدا من ما هم به واروی ندهیم نه هدن لا به ازنه چون شیطان هم در ذهن دایره وجوده نه که اون خارج باشه شیطان در دائره وجود مثل فرصم مار و ا گیاهان سمی و قظارهای سمی که انسان هست، فرقی نمیکنه مثل اونه. اون فقط محسوس نیست، یعنی نیست، مدرک مدرکی به احساس خمس نیست. این یکی مدرکه. یعنی کعدما در موجودات چطور ما موجود نافع داریم؟ موجود زار داریم. موجود این که هر ممکن ناپیدا باشه، زار باشه، در خارج عالم مادن همینه توره. نه اینکه الا مجرد صرف باشه، نهشون بحث دیگه‌ایه که یکی ملک داریم که خیر یکی شیطان داریم که شربه مزه، یکی هم امثال جنگ داریم که ممکنه خیل باشه ممکنه شرب باشه یعنی نام نه سالحون و نام نه قاستون آدم های خوب هم داریم آدمای بدم بد هم داریم که انما در عالمی که مدرک ما نیست رویت نمیشه این سنه رو هم داریم ایمان به این سنه در برآن کریم موجی مزنه این زیاده جای بحث یکیش کنم پس میپنی برین اینها باعث پس معلوم شد این آیونه اهل مدینه هم به اصطلاح خودشون دو تا بوده یا از ملک بوده یا از شیطان از تصغیر جن نبوده مشخص چون اون کاری که انجام داده میشد و مصدرش قابل رؤیت نبود و دیده نمی‌شد یا با استانه به ملک بود یا استانه به جن بود یا استانه به شیاطین بود خداوند دارن در اینجا می‌فرماد که نه اینکه خداوند بخواد توضیح بده کار اونها رو که بگه آن یه توضیح هم در زمنش هست. اما اینا اعتقادشون این بود که ما از دو راه استفاده میکنیم یکی اموریست که به شراطین میگرده، یکی اموریست که وحی الهی برمیگرده وحی الهیشون هم در تورات نیست در ملحقات تورات هم نیست وحی الهیشون نوشته ای بوده که خداوند دو فرسته در بابل داشت چی جوری فرسته ده ما اینی که در ادیه از روایات در این آمده. احتمال داره اگر حالا مال ساختگی باسته ها نباشه احتمال داره همون ساختگی خود همون یهود بوده که انه هم لای احتمال داره چون اونا خیلی مختلفه و بعدش هم توی صحاب بخاری دیگه والا بحث کاره با ایش بخشی بحث طور میکشه و هر حال اون چی که در اینجا از این مقدار برآنی ما میفهمی اینها با استعانه به شیاطی شیاطی نظر سلیمان و با به وحی الهی بر دو فرشته بر حالت و مارود یه مجموعی از سه روز کرده بودن فا یک من منها از این دوتا معلوم شد از این آیه مبارکه از راه جن نبوده این هم روشن شده خوش اگر را بین شما بخی قرار دادیم بله نه اون خب همون دیگه یعنی ابلیس در طبیعت جن بود نه میدونن ابلیس از جن بود یعنی ابلیس از جن بود حد سوا بود بعد دیگه شیط شر محض شد چون از اطاعت الهی خارج شد شر از شب محض شیطانیان جن جن چرا دیگه شیاطین جن اصطلاحا اینه یعنی موجوداتی که مثل جنن اما شر محض هن. در مقابل جن که به نه سالمون منه و قاستون من نادونه داره و در مقابل مدر که خیلی خیرمنزه در این تقسیمه آیه اون وقت همون ما با هم بغاوین این خیال میکنه این رو به شیطان نسبت میدن شیطان هم زید. مثل فرقمم زیر مجموعه قدرت الهی این فرق نیست که مورد این همین قدرت الهی فرق نمیکنه تو سم من هست تو قضا خوب هم تو قضا بعدم هست تو میانه هست هیچ فرقی نمیکنه و اگر تعلمون بعض اینها رخصت یعنی این شاد نازل به دومیش باشه و یا تعلمون این یهود اونجا که فی تعلمون میگه گفت و تعلمون چه عجیبه فا و با و تعلمون ما يغرهم ولا ينفعهم میگه لطفاً تعجب اینه که اینها از این به استر علم خودشون اون قسمت های مفید رو خب اگر از ملائکه باشه یه قسمتش به ملائک برگ بغیانی باشه و به ملک باشه این با مفید هم توش باشه این ها فقط موزرها رو مالای انفعه هم رو بکار نیم رو ولقد علم و الاخر این راجع به آیه مبارکه پس از این آیه مبارکه معلوم میشه که ادهی از یهود دو قسمت رو در اختیار داشتن یک قسمت شیطانی یک قسمت رحمانی و رحمانی اما این دقیقه بکنی این قسمت رحمانی تو تورات نیامده من چون کتاب تلمود ندارم این کسایی که اینجا ها متعرضی این آیون و شابهین و اسرائیلیات اینا شدن از تلمود قصه بابل و ها و حاروط نقل نکده این کتابی هستن که متعرض اسرائیلیات شدن احتمالی که من میدم این مطلعی بوده که در اختیار همون یهود مهینه بوده اسناد میدادن که خدا دو فرشته رو به بابل فرستاد به نام هاروت مارود و به اونها مثالی گفت مثلا اگه بخوین زمین سبز بشه این دارو رو بخونین اگه واقعا این کارو بکنین یا این چیزا به صورت ظاهرش اینطوره ما اون زره علالملکه این ظاهرش اینه لذا خدا میگه خب اگه ملک بود باید توش کار خوبم باشه چرا شما کار خوبش انجام نمیدین فقط کار بد انجام میدین کار بد مناسب با حیاتی میشه، کار خوب مناسب با ملکه پس این ما انزله علال ملکه ادعا می کردن. دو فرشته در بابل بودن خدا به اونها ون کرده ادعای از امور رو اینا تلفیقی کردن سه رو با اونها انجام میدادن. این ظاهر آیه مبارکه ربطی انقدر داره که این قصه در ویراس های یهود باشه این قصه در میان یهود مدینه و خداوند متعال در این آیه راجع به این دوتا مستری که اینها داشتن یه تعلیقی به خدا به اونها میزنه یه توضیحی راجع به هر دو اما ما تسل و شیاطین حالا ملک سلیمان خدا یک کلمه جمله معترضه میاره در بسن تعلیقی میزنه و ما کفر سلیمان ولیکن نه شیاطین کفر بود یو علمون الناس از سه <تصفيق> تعلیق علایی بر اول دوم و ما اون زل اول ملکیم به باول هاروس و ماروت. خدا یه تعلیق میزنه و ما یو علمان من اهلن حتی یقولا انما نه نکرس نفلا تکور حدود یک سر خداوند بر دو تا نوشته اینها تعلیق میزنه و این تعلیق هم لازم نیست که طبقه به اصطلاح بیان واقع باشه شاید مثلا در اون زمان در اعتقاد اونها هم بوده خدا انوها این درست نیست اما تعلیق اول که ما پتل و شیاطین علامونی که سلیمان تعلیقش اینه این دروغه شیاطین نبوده چی این چیزی نداشتن و ما کفر سلیمان حالا بعد معنی کفر بازه ایکی دو دیگزم توضیح دادم بازم از سلیمان وقت در اینجا کفره به معنای استعمال شیاطین چون شیطان در مقابل حق قرار گرفت در اصطلاح در مقابل خدا یعنی حضرت سلیمان اینطور نبود که با استعانه شیاطین این کارو بکنه اینا نسبت دادن که مثلا فلان دعا رو بخون مالک میشه فلان کار انجام می‌کنی نوشته می‌نينن شر و حر یک چیزی دارن که شر و حر و عالم رو مالک میشی یه چیزی اینجوری خداوند میفرم ما تخر سلیمان بی بیخود گفتم حضرت سلیمان از این راه ها به اون قدرت دارد که یا آسف برخیا آخه ادعاهای شیاطین بون راه راها نرسید. ولیکن نه شیاطین کفر رو. چون تر شواهد موجود، شیطان مثل ملک جنبی تکلیف نداره، جن داره مثل انس. اما شیطان خود جنبی تکلیف نداره. لذا احتمال بسیار قوی داره که این کفر در اینجا به معنای کفر ماهیت و ذات و استعداد و هویت اینها باشه. یعنی ذاتن شیطان یک نیروهایی که در مقابل هفت سرکشی میکنند نیروهای نیروه های شیطانی این هستند. فرس که مثلا اسمش انواج بذاریم، اتر بذاریم، چی بزنیم افیر بذاریم، الله به اسطلاح مختلف که این ها هر در آدم طبیعت هستن که اینها یک نوع سرکشی دارند. در این حالی که تحت اراده الادی هستن مثل سن کلم معلم برا؟ مثل... کلم معلم صبح یعنی سمون رو انسان از اون استعمال نمیکنه. اما شما نستجیب و بالله هم رو در غذای یکی قرار نور می کشیم دقیق بکنیم سم که اندما یک وجود شر نه شر مطلق و شر نسبی. یک وجود شره, شره, شره, شره شیاطین هم از این قبیده ولی که نه کفر رو این کفر چون کفر در اصطلاح ما اختیاری ده. کفر رو بعد ایمان کن کفر اختیاری باشه از ایمان اینجا شواهد نشون نمیده شواهد در جن نشون میده که کفر و ایمانشون اختیاری در ملک نشون نمیده ایمانشون اختیاری و من هم سجود و لاقیان من هم و من هم در, در, در اصاف ملائکه اگر اونها سجودن این سجود در ذات و هویت اونها حقیقت اونها این نیست که اختیاری باشه مؤمن شده باشه پس نه کفت در شیاطین اختیاریست نه ایمان و و به این و سجود و رو و قیام به وظائف حق در, در ملائک اختیاری باشه. ظاهرش اینطوره، طوره. ولا که من شیاطین کفت رو چون شیاطین ذاتا در مقابل حق هم. در مقابل نه اینکه اینها یک مبدع مستقلی هستند و اختیاری به یک دارند و مابل عرض یعنی تا ایلا و بعد ایک الهی برای شروع نه. اینها ها اصلا نحوه ترکیبیشون در خلقت اینجوریه در بود واقع خلقت ولیکن شیاطین کفرون و این کفر اینجوری ظهور پیدا کرده که یا علمون الناس از سه او دقرد بکنه لذا به ذهن میاد که کفر شیاطین در اینجا مراد و ماهیت و استعدادشون باشه حقیقتشون باشه و احتمال هم در رو همین قرینه و ما کفر سلیمان هم همینطور باشه یعنی حضرت سلیمان چون پیغمبر الهی است اصلا در ذات حضرت اثر اشتباه هم بالاتر و ما کفر سلیمان در ذات حضرت مخالفت با حق وجود نداره و ما کفر سلیمان در ذات شیاتی مخالفت با خدا وجود داره دقت می‌کنه این دو تا با هم فرق می‌کنن او اگر شما سر پیدا کردید این سیل یا علمون هم مثل همون یک علمونه. یعنی اونها شیاطین به انسان سهر رو یاد میدن اون کارهای شیطانی رو یاد میدن دقت بکنی اون کار شیطانی رو به این جور یاد میدن که انسان انجام میده نه فقط مجرد اگه بخونه مثلا بخونه کسی مخواد کسی رو بکشه فلان مثلا کار رو انجام نه اینا انجام میدادن یا علمون از سهر مثلا فرصویم به این که میگن که مثلا اون خلاف های خبیزی که بودن انوان مختلف سمه های بسیار قویر انتخاب میکردن که ایمه رو به حضرت ظاهر که حسن کنن با اون سمه ها از بین ببرن یه رواست داری که حضرت باهیفر حسن شما برگشتن سوار شطر یا بودن برگشتن مدینه گوشت ران حضرت حسن ریخ خب این در کتابه طبق قدیم هم هست در به اصطلاح این سمه حلاهل معروف که در شما در هند میشه منطقه سه حلاهل درست میشه در کتاب های طبیب اسم بیش معروفه بیش به او یا و شی بیش همون حلاهل نوشتن که بعضی از انواع این حلاهل اینقدر قویه که اگر روی زین عصب دارن و انسان توروشه میمیده اصلا این نوشت شده هست اینه که نوشتن به امام باقر وقتی برگشتن گوشت رانشون بود احتمالا استفاده از همین نوع سم دیگه ظاهرش هم باشه. و باشه هم هست در و در همون کتب مربوطه نوشتم بعضی از اخسامش اینقدر قویه که حتی روی زمین گیاه دیگه اثر نمیشه تا فاصله 7 هشتم متر این بیشه در میاد انواعی داره یکی از انواعش اینقدر شدیده که نه کشنده آدم حالا کشنده آدم جای خودش و کشنده حیوان که جای خودش اصلا جوریه که نبات هم اثر نمیشه اینقدر قدرت سمیه این چیز زیاده و این سهری که کفری که در اینجا هست اون حقیقت و هویت شیاطینه شیاطین اینه یا علمون هم ناس از سه چون شیاطین در خلاف طاعت الهیه هستن نیروه هایی به برسته در اون طاعت در کل نظام خلقت تحت اراده الهیه است، و که نحله وجودشون اینطوره. و شیاطین در انسان بیدیم که دیگه باید داره که یه مجبود مثل خون انسانه یعنی در خون انسان وجود داره اون وقت این نتیجهش این میشه که خداوند متعال میخوایم بفهمنید که اون سهر عبارت از اعمالی که شیاطین انجام میدن چون انسان این خسلت رو داره که میتواند هم تسخیر شیاطین کنه هم تسخیر جن کنه هم تسخیر بکنه. ایلا در ایمان کبری کافی سوالی می‌خواستم مراجعه فان تقریبا چنین معتبر حالا اون زورو با, با بعض از قضایا مولا رضواه کلانی قال ان خدا خدامشیعته الان روایت اینطوره ان الملائکه و نظر کردن الملائکه به نظرم جالکم خدا بده خدامشیعته این هم وقت در اینجا اونی که ما مثلا آیه رو خونیم برای جد دیگه این تصادفا خیلی به درد ما میخوره. آیه مولی در بحث شعر اون تفسیر قرآنی از بحث سر در اینجا خوب واضح میشه سر عبارت بوده از کارهایی که به اصطلاح خوب نیز کارهای بد، کارهای مزر و این کارهای مزر کاری بوده که در ذات شیاطین بوده این شیاطین در اختیار انسان که قرار بگیرن انسان اون کارها رو انجام بگه حالا اگه بخیرم معنا بکنیم این بگیم ببین جن واقعیت داره اما مصلحت نداره اما حقیقت نداره اون اشی اشیخان سهرم همینطوره وللا که نشیاطین کفر یعنی شیاطین از طاعت الهی خارج شدن این قسمت رو انجام نمیدن یا علمونن ناس از سحر این خروج از طاعت الهی رو هم به مردم یاد میدن مثل این که پلان استاد پیزشی یه از یاد بده شما اگه موقعی دشمنت عجبه این ببری این پلان چیزی بده که به حسر و ظاهر هم نیست اما در واقع بعد از زور و دور میکشه این اصطلاح هم میشه سر میشه جم میشه کار شیطانی یا علمونن ناسه لیکن نشیات این کفر رو یعنی شیطان واقعیت داره اما این در ضد ارزش های الادی در ضد اون که مطلوب الهی است. این کار رو به انسان‌ها یاد میده این یاد دادن مجرد صورت ذهنی نیست در صورت ذهنی و عمل کردن مثلا شیال طرف مقابل به طور طبیعی مرده در صورتی که این آغاز مخ... چی میگفتن این مجرده این صحب شده نبوده استخدام شیاطی بود در واقع و انسان این نیرون داشته که تسخیر شیطان بکنه پس این مطلب که مرموم استاد عده اده که صحر واقعیت نداره از ظاهر آیه به درد ما خورد که صحر واقعیت داره اما حقیقت نداره نداره مثل که انسان یک نه می به طرف بده بدون ترجع شخص و بمیره کار کار خوبی نیست اما واقعیت داره تعلیقی که خدا و این قسمت داره و ما کفر سلیمان ولا که نشیاتین کفر احتمال هم در مورد ماکر فرع سلیمان چون اکثر در کتاب فاضل آن میگه نه طول میکشه. کشه در کتاب تورات نسبت در ره درفی نسبت داده شده به از سلیمان که مثل جولا کافر شد در آخر تو بتخان درست کرد شاید اشاره به این باشه چون این تفکر در میان اهل یهود بود به هر حال که از علی لازم نه روایت اسلامی ها نه که اصلا یهود مبینه می که چرا رسول الله محمد این حرف رو سلیمان نبی نبود سلیمان کافر شده بود او بود درشان کافر شد احتمال هم داره که این آیه ناظر به اونجا هم باشه این اون ذهنیه دیگه یهود داشن در کفر حضرت سلیمان یا ناظر باشه به این کفر تطوینی و ماهوی و استعدادی و حقیقت وجودی شد در این راجب قسمت اول اما راجب قسمت دوم و ما اون زلال ملکه به بابل هاروت و مارود خداوند میخواد بفهمن که در اون نوشتاری که شما داشتیم راجب هاروت و مارود اینم شما اضافه این چرا الان نمیگیم اونجا داریم و ما یا من منعهده این فرق بین قسمت اول و دوم فرق بین شیطانی و رحمانی در قسمت شیطانی فرمود ما کفر سلیمان و لاکرین شیاطین کفر در قسمت رحمانی میگه میگه شما نمیگید اینا وحی الهی به اون دو ملک بوده و ما یا الی خدا میگه و ما یا المانه منه این دو ملک که شما میگی وقتی می اومدن وحی الهی رو میگفتن تعلیم نمی کردن حتی یبولا انما نحن فسمه فلا تکور یعنی میگه این یهود این کچکی رو نقل نکردن چون اون ملک گفتن اگر این کار بکنی این, میشه. این کار. میشه لیکن گفتن ما برای آزمایشی ما دلیل به شما آزمایشن چی یعنی ممکن از راه درست بیدیم ممکن از راه بد بیدیم ممکن از سن رو به که چی بدیم بکشه ممکنه نه نگه افراد صالب ببونه خذاب شدیم و ما یو علمانه من احده این هم تعلیق الهی بر قسم دوم و ما یو علمانه من نحن ح هر قضی این اولی که شیاطین بود با دومی که ما اونزل اول این بود اون ما اونزل اول ملکه می به این ها به کسی این دو ملک اونها رو یاد نمیدادن، تا میگفتن انما نه و فتنه برای آزمایش برای دگرگونی خود فتنه و همه جا جا شدن عوض شدن حالا جب جب یه اگه صحبتی شده به فتنه صحبت صحبتی می کنن انما نهن و فتنه خلا تکفر این فلا تکفر این تکفر تشیری یعنی از این آموزش ما از این امور وحیانی ما در راه های باطل به کار ندار فلا تکفر پس خداوند متعال کلام این یهود رو کرده مسترشون یک مقدار شیطانی بوده یعنی یک مقدارش تسخیر شیطان بوده یک مقدار... یعنی کلماتی بوده که به شیطان نتسخیر یک مقدار کلماتی بوده که به شیاطین حضرت سلیمان نسبت دادن یک مقدارش هم وحی بوده که به دو خلشتی در بابل شده خداوند می اون چیزی که شیاطین اون به سلیمان نیست، یه خود به سلیمان نسبت میدید ملک سلیمان نسبت ندید این کاری بوده که خود شیاطین داشتن و شون چیف هم طبیعتا در خلاف اراده الهی حرکت یعنی وزش این طوره. سه کار اونهاست یعنی افرادی از انسان توانایی تسخیر شیطان دارن شیطان که در اختیار اونها قرار گرفت به وسیله اون شیاطی میان سه رو انجام میدن یعنی اون نیروهایی که واقعیت داره اما مصلحت نداره ی... یزر و لا ینفر زرر مثل سمن این میاد از این مثل فرسن مسائل هستی ممکن ازش بند بسازن ممکن ازش مثل پیشرفت های علمی بسازن تقدر کردی این حالت این طوری داره اون شیاسی نه مثل سر نه مثل ما بین همه نیست این مطالب رو به انسان یاد میدادن برای اینکه که موزهر باشه اما راجب اون قسمت دوم که ادام میکردن رحمانیست و وحیانیست خداوند متعال میفردن خب شما میدونید اون قسمتی که شما نسبت نزیدیم و اون دو ملک توش بود و ما و علمانه نه حتی اغولای نه ما نه رو این توی شیطانیش می خدا تو رحمانیش اونا می چون این امور امور غیر طبیعیست این کار انجام دادیم اونطور میشه این برای آزمایش شماست این کار رو برای کار خوب به خانه، برای کار بد فلا تکبر در راه بد به کار فقط پس بنابراین در این آیه مبارکه که ارز کردن مرحوم علامه تباسه نوشته هیجه برای ما همچه آیه این اضافیم این اجمال به نظ یکی میلیون و سیزای شرط هزار در آیه مبارکه دادن گره که احتمال هم بیشتر هم بشه با اون ما اضافه کرده و انصافش معلوم شد که احتیاج بین احتمالات اونها نیست ای مطلبی بود راجع به ازده یعنی هود چون ارز کردم در مدینه مصروع بسیار دوبال دنبال و جلوگریت بیشتر مردم به اونها مراجعه انتا بسیار دوبال ما دوبالو شای مردم. یعنی اینها ممکن است که اخباریه مراجعات مراجعاتیراشن اما مراجعات علمی عوامیشون بیشتر از مراجعات علمیه این ها شاید به خاطر تأثیری که در جامعه مدینه داشتن و مردم به حساب مشکی یا حتی مسلمانان صدر اول یک چشم خاص به این سحر اینها نگاه میکردن شاید آیه مبارکه صلاح میوصلن که این رو توضیح بدن که سحرشون به دو چیز برمیگرده یکی شیطانی یکی رحمانی اون رحمانی هم توی شیر محض میده اما قرآن ساکت ایفای اون رحمانی جلست بیا نه اون ساکت. شیر شیطانیش هم شرب محض بوده اونا هم توی عملا شرب انجام میدادن این خلاصه برس نمی اون بسمان رحمانی رو به کار برن این خلاصه آیوم برزن که خیلی ابهام خاصی تو آیه نیست و مشکلات آیه قابل حل یعنی به ذهن ما یک مشکل خاصی رو نداره و یک نقطهی که ما الان باقی درد ما خورد این از اینکه مسئله بابر رو ما به خاطر کردن بابر متحرد آیه و اون در که در اسطلاح قرآنی سهر امر خیالی و رحمی نیست که به همه استاد به عده اصرار دارن یه عمر واقعی است که امری که حقیقی نیست مسلحت نیست نافع نیست مثل اینکه انسان سنده رو در کسی دریزه. و منشأ این امر واقعی وجود یک نیروه در فبیعت هم چون که سم در نیروهایی که قابل رویت نیستن موجوداتی از این قبیل وجود دارن که به تحبیل قرآنی از اون تحبیل به شیطان می و انسان می‌تونه این شیاطین رو تسخیر رو بکنه و با تسخیر اونها اون کارهای سه رو انجام بده دقیق کردیم یا علمون اناسا سهر این میشه، اینجا خیلی واضحه با تفسیر قرآن هم از صفر تا اینجا رو چم کرد این تفسیر اول فردا بقیه بحث این بحثی از تو پیدا